بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا محمد و آله ترکه صلی علی محمد و <وعلي> محمد و درس درس اول حساب کنین درس جلسه دوم خستین نه ولی چون بخش اون روز ما و شما نرسید لذا جلسه اول هست پس میتونید بینیسین جلسه اول عنوان که داریم تاییمه گیریم خود عنوان درس ما شما هست یا نام مضمون ما شما هست تجوید و مساور آره، عنوان درست؟ آره، عنوان درست نه خود مزمو. ولی درست این ما و شما راجع با ما اسمك يا نام Diego؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ nome كتاب بالتعريب ديجا. ما تودعش درس اول عنوان رو بلویشن آره مراحل تدوین القرآن کریم مراحل القرآن او نام مضمون دیگه مراحل القرآن کریم این عنوان درس تدوی، مراحل و القرآن الكریم ما شما دیروز هم اکمی نویشتیم گفتیم قرآن کریم پری بذاره قرآن کریم کلام خداوند متعال هست توسط جبرائیل به قلب پیامبر اکرم صلوات الله علیه آله نازل شده است و این قرآن کریم افضل کتاب های آسمانی است که بر انبیا وارد شده است چون غیر قرآن کریم صحیفه های دیگه هم ما داریم همطوره وحی شده نازل شده و قرآن کریم آخرین کتاب است که نازل شده است و برترین کتاب از بین کتاب آسمان آسمانی است درست شد حالا سوال این است این قرآن کریم چی بونه تدوین شد ما برای تدوین قرآن کریم یا مرحله های تدوین قرآن کریم دو رویش رو پی بگیریم آه. یه یا الیف می نویسیم، یا الیف می نویسیم بلکتر از الیف برای رویش تدوین کرانی نه نه، برای رویش نه خود تدوین قرآن کریم رو دو گونه بررسی می دو گونه یا دو نو نو اول تدوین ما المکتوب نه، ما نه المکتوب دو گونه چی؟ دو نو دو نو التادوین دو نو تادوین دارن آه دو نو تادوین ال ال النفس المكتوب عن مكتوب المكتوب نكتبنا احسن هل مكتوب يا كتابة كل مقطع ما كتبوا لي شيء كل مقطع في النبي حضرت نبی. فی حضرت نبی درست الله نبی. شد نویشتیم. کدام مرحله هست؟ قرآن مرحله مرحله تدریس شده خواه. مرحله اول در حضور خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همین که آیه نازل میشد فوراً همونجا نوشته میشد توسط اصحاب پیامبر حداقل یکی از اصحابش اونم به دستور پیامبر با املای پیامبر و دوباره قرائت میشد به خود پیامبر پیامبر میشونید تایید میکرد بعد از تعییدش به دیگر رو هم میرسید. درست شد؟ درست شد؟ پس اولین مرحله نگارش قرآن کریم به شکل قطعه یا آیا آیایی به فور نزول یا که نازل میشود فورا نویشتن میشود. درست شد؟ این اولین مرحله تدوین قرآن کریم به شکل مکتوب یعنی نوشتن مکتوب آه مکتوب چه گفتیم؟ ما گفتیم چی گفتیم ما نوشتن مکتوب کتابت کل مکتوب یعنی نوشتن کتابت کل مطلع نگارش یا نوشتن هر نقطه هر متن هر آیه فی حضرت النبی یعنی در حضور پیامبر نوشتن حرف هر مقطع آیا، هر قسمتی آیه آیه نشبیم اجازه آیه هر چون که ممکن چی هست بعض وقت یک آیا چی میگه خدا هر آیا دیگه؟ نگارش آیا. هر مقطع در حضور پیامبر حضور پیامبر در حضور پیامبر در کتابت کتاب، کتابتام، ها کتابت کل حضرت نوید کلی مختاقی نویشتیم؟ تو قسمت بعدی یا شماره دوم بینویسیم تفریق کتابت سابقت تفریق تفریق کتابت سابقت بله کتابت سابقه تفريق کتابت سابقه ای کتابت سابقه اول نیش اولش معتبر خوک کتابه کل مقطعی، سه حضرت النبی و دو تفریق کتابت سابقه، فی صحفین، فی صحفین. آه، فی صحفین، فی صحفین، فی نه گیریم و می‌امزولاریش خوش آدمی همی. خیلی عالی. سلام عليكم بیایشیم یک ساعت دیگه تماس سر کلاسیم. نوشتم س نسخ و عده مصاحفه معنیش اینه خو همو آیاتی که در زمان پیامبر و در حضور پیامبر نوشته می شد اونمو آیات تا چند سال بعد از شهادت پیامبر بین مردم به تفریق میشد تفریق یعنی چه بین مردم تخش میشد نش میشد و مردم همینطور طور میکردند و میخواندند تفریق نوست کنن نشر نگارش سابق نشر نگارش سابقاً قبل سابقه اگر قرآن های سابقه بنویسین بهتره بکرد. آيات سابقه نمیشه آ نگارش آیات سابقه تی تی صحیفه های تی صحیفه های, های. های. های. های. های. های. نگارش آیات سابقه صحیفه های. آره تمام دیگه نمیشه صحیفه‌ها رو میدونیم یا نه خب در خود هم قرآن کریم صحیفه گفته میشه آه. با کتاب های دیگه هم صحیفه گفته میشه بعد از پیانبر همته صحیفه های اینچونه نی قرآن نوشته میشه و بعد مردم توضیح میشه تقش شده به قدر دیگه درست شد؟ مرحله سوم اوم را بینویسه و عدتی مشاحف نوسخ نسخوا نسخوا عدة مصاحف نسخوا عدة مصاحف من الصحف الثابتة نسخوا عدة نسخوا من سوخف سابقه نویشیم؟ من الصحف سابقه <تصفح> <تصفح> <ناوشن؟ تصفح> خیلی ما سهر في من السور خب ببینیم در قسمت سوم یا مرحله سوم ما در مراحل تدوین را می‌خوانیم درست در زمان پیامبر اول قطعه‌ای از قرآن نگارش می‌یافت بعد از پیامبر که وحیقت شد می‌شد درست دا. یعنی قرآن هم تمام شد کامل شد اونامو قرآنی که وارد شده بود بین مردم به هم ای که قبلا تدوین شده بود و نگارش یافته بود بین مردم توضیح میشد و خوانده میشد تا اینکه در زمان از سهومی رسید درست چون؟ اصابه نهستن آره آره رو گفتم دیگه بین مردم خوانده میشد تا اینکه در زمان سومی رسید خوام در زمان سومی واضح بود که اگر این اختلاف صحیفه ها یا اختلاف نسخه‌های از قرآن کریم که بین مردم با وجود آمده ادامه پیدا کند در آینده های حالا دور یا نزدیک ممکن است قرآن کریم مورد دست زیاد قرار بگیرد متوجه شدیم چه میگیم؟ دست یعنی چه یعنی ممکنه؟ آیا کم و زیاد بشه؟ جا و بشه؟ معنیشان متفاوت بشه؟ درست صورت این همه آره؟ خب برای این که از این دست ها نجات پیدا شود برای قرآن کریم در زمان سومی چکار کار شد؟ اصحاب پیامبر. چون تا اوزمون زنده بودن دیگه کسی پیانبر را درد کرده بودن از پیامبر را جمع کردند و به اتفاق همگیشان نسخه فعلی قرآن کریم را تدوین کردن این گرچه این نسخه فعلی اون نسخه نیست که حضرت امرو علیه السلام تدوین کرده بود متوجه شده؟ این تدوین را بقیه از خواب پیامبر در زمان خلیف تدوین کرده منتها همین نسخه ای که در زمان خلیف تدوین شده، شدن به تعیید امیر علیه السلام هم رسید و هنگامی که امیر به حکومت رسید دستور داد که همه قرآن بین مردم باشد و هیچ کس دخالت یا دستورده در این قرآن نزند گرچه همه قرآن کریم که در اون زمان تدوین شده بود دوچار کمبوتات نگارشی بود هنوز نگارشش شیوه نوشتنش کامل نبود تمام نبود ولی با آن امرو المعنی علیه السلام تأیید فرمود همه قرآن فعلی را و دستور داد که هیچ کسی نباید به قرآن دیگه دست درازی کنه. همه قرآن موجود صحیح هست درست بعد از آن مرحله دیگه مسلمان ها قرآن هی چاپ هیچاپ پردارد تا امروزه که قرآن داریم چاپ میکنیم درست اینمی قرآن همون قرآنیست که از اون زمان تا حالا به دست ما و شما رسیده و مورد تعیید امیر علیه السلام هم قرار گرفته واضح شد؟ بله. خیر داره. معنايش مقدار نصب يونويستي شد بلند بگو خانم که بلند بگو که در مکلوب و تفتیکی داریم چیز چی خب تا این قسمت تمام شد رسیدیم خب اینجا یک چیز دیگر بین میشین ادامه اینا, اینا رو پاک کنیم نو نویشه کنیم که زهور رو ظهور رو، چهار باید پنج میزیم که نش هیچ فقط بینید در خط ظهور رو معفااتین ظهور و زهور ظهور معلفات ظهور و داخل الخاوس مين علم رسم المصاحف رسم المصاحف المصاحف نوشته؟ آخرین مرحله از تدوین مکتوب قرآن کریم. ببینید اول در زمان پیامبر نوشته شد. دو، در زم... بعد از پیامبر تا زمان سومی همون نوشته ها نوشته شد و می شد و به فراغت رسید. درست؟ در زمان سومی کل نسخه های قرآن کریم توحید شد، یکی شد. و حداقل نه نسخه نوشته شد و این نه نسخه در سرزمین های مهم کشور اسلامی مثل یمن و کوفه و جه های خود مدینه و جاهای دیگه فرستاده شد درست شد این سه مرحله مرحله چهارم همه نسخهای قرآنی را مردم یا مسلمانان زیاد نوشتن و آخرین مرحله که مرحله پنجمش رسید ظهور و مؤلف معلف یعنی تش... تعلیف شده جمع آوره شده قرآن کریم وقت توضیح شد و نوشته شد یک سلسله نگارش های را در خودش داشت یا یک گونه از خط چه؟ شیوه نوشتاری را در خودش داشت که از قرآن‌های سابقه کرده متفاوتتر بود. متوجه شدیم چی گفتیم؟ طرف از ما نگاه کنید. خانم کیه؟ طرف از ما نگاه کنیم آخرین مرحله وقت قرآن کریم بعدن چاپ شد و چاپ شد یا به ترتیب که هی نوشته شد و نوشته شد. از نظر نگارشی و رسم الخط های رسید که متفاوتتر از قرآن های گذشته بود یا به تعبیر دیگر پیشرفته از قرآن های گذشته بود از نظر نویشتاری دیگه از نظر محتوی قرآن نه سهی شد؟ از نظر نویشتاری خب اینجا بود که علم رسم المصاحف به وجود علم رسم المصاحف یا هم به طبیر دیگه خط نویسی تا هنوز که ما شما شنیدیم خط کوفی <متصفح> درستا؟ <متصفح> خط کوفی یدنه و رسم الخط دیگه نزد، سنز و گونه های دیگه خط درستا؟ همین انواع خطوط و تفاوت هایی که در بین رسم ها هست در قرآن کریم مورد استفاده قرار می و قرآن ها با رسم الخط های اجمله با رسم الخط کوفی خیلی در جهان اسلام معروف هست درست؟ خب حالا با توجه به پیشرفتگی نگارشی که ما داریم باز بعدا انشاءاللو می خوانیم که این زیر و زبر چطوری با وجود آمده و توسط که با وجود آمده قرآن کریم که فعلا در دست داریم با رسم الخط عثمانتا هاست این این نسخل بتم ما رسم المساخف این قرآن قرآنی که فیلن در دست از ما هست با رسم الخط عثمانتا هاست این آشک... ظاهر شدن گونه های مختلف جمعهار قرآن کریم در اصل های چاپ پاکستان این خط را ندارند دیگه از بین مراجع که مراجع تقلید شیعیان که هم یک چند در پیش فوت کرد خدا رحمتش کنه آیه صافی گلپایگانی بودن ایشان از جمله حرف این بود که ما قرآن کریم را باید بر اساس خط عثمان طه چاپ نکنیم بلکه بر اساس خط فارسی باید چاک کنیم از جمله مراجع تقلید ای که نسبت به نگاریش قرآن کریم یا خط قرآن کریم حرف داشت ایشان بود که حالا مرحوم شده ایشان همین چند پیش بود نمیداریم یک سال میشه هنوز که نمیشه دقیق یاد نیست دم اواخیر مرحوم شده خب به هر حال فعلا این قرآنی که ما و شما داریم از نظر مکتوب یعنی نوشتن تا این پنج مرحله ده دست ما و شما رسیدن صحیح شد یا از نظر نوشتاری اینوال قسمت بایشه میرسه استاد زهور یعنی آشکار, شدنی آش... آشکار شدنی زنبابر... تعریف شدن آش... آشکار شدن غلط تعریف کنین درام تعریف شد نه نه خود آشکار آشکار شدن شیوه های نگارشی متفاوت آشکار آشکار شدن شیوه های نگارشی متفاوت. مشخص شدن شیوه های نگارشی متفاوت. نگارشی متفاوت با به متفاوت النقل صوتیو الصوتي قرآن الكريم.النقل صوتیو لال خب نگاه کنین یه را اگر بخواییم دیگه طولانی میشه خود چه مرسیم تنیسین ما میگیم به شما خوب سعی کنین خب مهم خود محتوایش هست که شما منویسیم نگه خطش مهم نیست سعی کنین از نظر مکتوب ما تای چند مرحله قرآن به دست ما رسید؟ پنج مرحله از نظر نقل صوتی چطوره که ارتباطی با نوشتن نداریم خب؟ مستقیم از نظر خواندن گناه خانش این قران کریم چه گونه به ما رسیده دقت پر کنین چه میگیم ما و شما فعلا اینکه قرائت میکنیم آیا این قرائت ما درست هست یا نیست برای اینکه قرائت ما درست باشه باید عین همین قرائتی که فعلا میکنیم عین همین چیز رو برای اکرم قرائت کرده باشه صلوات الله علیه اگر برخلاف قرایت یا متفایتر از قرایت پیامبر ما قرایت کنیم این قرایت ما از قرآن کریم خطاست و چی واسه مرتفعی که به گناه میشهیم درست آره پس قرایت امروزی ما اگر این قرایت پیامبر بود درسته اگر نبود نیست درست؟ حالا این قران کریم از نظر نقل صوتی چطور به ما رسیده قسمت اول خود جبرائیل امین از خداوند متعال قرآن رو به پیامبر قرائت کرد یک بنویسیم قرائت جبرائیل جبرائیل امین قرائت جبرائیل امین به قلب پیامبر درست <تصفيق> یا اه با پیامبر بینیم کافیه ان شاء الله و پیامبر آره. آره. آره درست؟ نوشتم؟ دو. شنیدن صحابه از زبان پیامبر و قرائت به حضرتشان. آه. شنیدن صحابه. از پیامبر از پیامبر. خیر، از پیامبر از پیامبر از پیامبر و اعاده ی هم بنویسین کافیه و اعاده آن از و اعاده ی اون خلاص با نوشتم از و اعاده ی آه و اعاده آن به پیام برده نویشتیم؟ سه نقل اصحاب نقل اصحاب تا امروز نقل اصحاب تا امروز پس چند مرحله شد؟ سه مرحله ببین مرحله اول همین قرآن کریم از نظر نحوه خانش توسط جبرئیل به پیامبر انجام شد. بعد از آن پیامبر به اصحابشان قراءت فرمود و اصحاب یاد گرفت و دوباره به پیامبر قراءت کردن و پیامبر هم تأیید کرد. درسته؟ بعد از پیامبر همه اصحاب دان نسار بعدی نسل بعدی نسل بعدی به نسل بعدی نسل بعدی به نسل, نسل, نسل, نسل بعدی تا که میرسه به امروز درست به این طریق این قرائت ما و شما باید عین همون قرائتی باشه که در زمان پیامبر صورت گرفته است صحیح شد؟ آها اگر اینطوری بود قرآن کریم بر ما حجت است و الا حجت حجیتش دوچار شک و تردید خدای نواسه میشه پس مسئله قرائت خیلی مهم نمی شدیم چه مگیم؟ آره. خب ما شما دیروز گفته بودیم که قرآن کریم از خداوند متعال آمدن برای همون جدول را کی بلدن؟ بخوانیم یکی یکی یکی یک نفر بخوانیم از که بلدن شما بسم باشه از طرف جوبیل و از محمد صلی الله علیه و آله و آله از طرف پیامبر با علی بن ابی طالب و عبدالرحمن مسعود و از طرف بدوشخیدت شده یکی عبد الرحمن سلمی و دیگرش از زبوی بن مسعود و صالح بن و از پس ده یک شوخه جمع میشن اینا یک شاگر دارن به نام آسم کوفی و از هم دو شوخه دو میشن میشه هفز است و دیگرش هم شوخه, شوخه. خیلی همه نگاه شوخه. کنین ببینین چی میگیم خب خداوند متعال توسط جبرایل قرآن را نازل کرد به پیانبر برسور؟ پیامبر چه زمان به شهادت رسید ده سال 11 همه هجری؟ توجه شدیم در سال یازده همه هجری. خب این نقل قول که می کنیم بر اساس اصناد است که اونای دیگه انجام داده متاسفانه ما تا همه لحظه با سلسله اسناد قرارتی از ما و شما نرسیدیم که از خدا امیدواریم پیدا کنیم این سلسله رو. اگر پیدا نتوانیم مجبوره باید به همه اسناد چک کنیم به این سلسله بی, بی سلسله بی پیانده پیانبر در سال یازده وفات شا... به شهادت رسید بعد از پیانبر زید ابن سابید در سال چلو پنج هجری در سال یازده خب زندگی نامش باز بیخونه میخوایم به زبانی به شما بگم در سال 11 هجری به شهادت رسید نه نوشتن نکنیم گوش کنیم بعد از پیامبر زید ابن سابید در سال 45 پنج هیجری. بعد از زید ابن سابید عبدالله ابن حبیب سلمی. از شاگردای کی بود عبدالله؟ آه از شاگرده علی ابن ابی و علیه سلام. سعید شد؟ ایشان در سال هفتاد و هست. بعد از حبیب... چه؟ عبدالله عاصم غاسم... کوفی کی داشتیم. اشان ده سال 127 هست یک 127 عبد الرحمن عبد عبد الله ابن حبيب سولاني ده 74 بود ها قاسم ده 127 هست 127 127 بعد از قاسم کی بود بعد از قاسم کی ام حفص حفص ده سال 180 هست اشتاد. خب بعد از آه بعد از حفظ عباي هست که ده سال دو سد و سی پنج هست. خیر. حالا میگم فیشر گفته این اسناد با او اسم دیش نیست. ده سال دو صد و سی و پنج. میکنیم؟ چند تاریخ؟ چهارده سد چلو یک یا سه؟ یا نه اون رو چلو درستو؟ ما تا همین لحظه را در دو پنج رسیدیم به میکنو چی چه دو سد پنج از چارده سه کم کنیم چند ممنم؟ هزار و دو و خورده ممکنه بمانه یا در همه خانه دو سال میمانه اینال فاصله یعنی دو سال را خب یکی یکی ما از اینجا نام میگیریم به شما منطقه این اسناد متاسفانه از اسناد ما و شما نیست باید اسناد خود رو پیدا کنیم و ایلا به همه سلسله باید بپیوندیم براز شد؟ نه لازم نیست فقط گوش کنیم اه عباید نحشلی از شاگردان که بود؟ از شاگردان حفظ بود. ایشان در سال 235 شد. خواب. بعد از ایشان احمد هست. احمد در سال 307. 307. بعد از احمد علی بن محمد نلخاشمیست در سال 368 هست. بعد از علی بن محمد تاهیر هست. در سال 399 یعنی قریب 400 درست شد؟ بعد از او ابو عمر هست در سال 444 بعد از ایشان ابو داود هست در سال 496 بعد از او علی بن محمد هست در سال 568 بعد از اشان قابید بن سبا بعد از اشان یک دقیق بخشن قاسم هست در سال 590 یعنی در سال کم در 600 شد سه؟ بعد از ایشان علی یبنو شجاع هست در سال 661 بعد از ایشان محمد هست در سال 725 اقت میکنیم؟ آه. بعد از ایشان عبدالرحمن بغدادی است در سال 781 بعد از آن محمد ابن محمد هست در سال 833. محمد ابن محمد 833. بعد از آن احمد ابن اسد امیوطی هست در سال 872. 872 قریب 900 شد دیگه. سن شد؟ خب بعد از آن محمد هست در سال 932. بعد از اشان قلی محمد هست در سال هزار و چار. هزار در هزار رسیدیم حدود چارصد خورده دیگه تا عصر معاشمانه. بعد از هم عبدالرحمن هست تا سال 1050 بعد از هم عبدالرحمن دیگه عبدالرحمن 700 ای بابا. اشتباه کردیم. بعد از محمد قاسم هست در سال 1111 1111 آل 14 دیگه نه 1111 یعنی حدود 300 سال دیگه 1111. بعد از هم احمد ابن رجب هست در سال 1189 بعد از هم عبد الرحمن هست در سال 1198 تقریبا 1200 شد 1200 خب بعد از ایشان ابراهیم عبدال... هست. دقت کنین چه میگین؟ ابراهیم هست. ایشان فعلا ظاهرا زنده هست. ایشان نه. فیلن زنده نیست. در سال دوازه و هفت تا دوازه روزمون و هفت زمان زنده بوده خم. بعد از ابراهیم که دوازه سی و هفت چود نه؟ احمد احمد ابن رمزان در سال دوازه دو فوت کردن. بعد از اون احمد ابن محمد هست در سال 137 فوت کرده 137 سال 14 چنده نه آه. بعد از ایشون هم محمد محمد سلیم هست در سال 1363 و, و بعد از ایشون هم عبدل عزیز است در 1393 1399 1394 14 چنده؟ 1300 سه چند سال تالیر میشه؟ سیزده نو دنور از چارده چلیسی از چارده چلیسی سیزده کم کنید چند میشه؟ چارده چلیسی سیزده نو دنور باید باید یک سد و سال شوان چند کم از چارده چلو رو رکم کنیم باید یک 140... 140... 140... 140... 140... 140... چلو هزار... هزار او بود هزار ای ای بردشت متوجه شدیم چی مگیم عبدالعزیز خواب عبدالعزیز غیون سود در یک سال قبل از سلسله قاریان و راویان قرارت هست که فوت میتونن. بعد از ایشان کتابی که ما شما میخوانیم ایشان هست ایمن و رشدی سوید. ایشان فکر فعلا زنده هست. اینه مینافر. اگر فعال کردم به یا فعال کرده دیگه آره به هر حال ببینیم این قراعت به این سلسله رسید به ما شما این و بعد هم اینمی سلسله طبعا حفظ میشه تا انشاءالله قیام خواهیم خون جلال الله دعاله فراج و دفعه <تصفيق> نکته چیست خواهم؟ وقتی یک وصف امام حالا نمیگیم که باز دوباره خستنی میشن یک وصف امام را که بیبریم باید از جا بلند و اون ما گفتیم در متوجه شده آه آه برای برای برای درست؟ شد؟ خب نق... اینجا اینجا نکتهی که باید توجه کنیم خب این سلسله از ترک اصنادی از اونا با ما شما رسید ولی ای اسناد را باید بر اساس روایت حفظ از قاسم از طریق افرادی که خود ما شما هم بهش اعتماد داریم بیرسانی قاریان معروف که فعلا در افغانستان و در کابل داریم یک قاریان بین المللی است نه چی؟ بین المللی که هست یعنی در کشورهای دیگر مورد اعتبار هست یکی عبدالکبیر هست که ایشان تحصیل کردهی الازهر مصر است یکی یک هم آره از خود موشون میکرم یکی یک هم آیه عبدالشکور فلاح هست آه. ایشان روحانی هم هست در آه. این حال با که با هست خب دیگه خاریان بزرگ دیگه موشون فعلا در کابل داریم به این خاریان طبعا مراجعه خواهد شد ببینیم آیا اینها سلسله روایتشان را تا هنوز دارن یا ندارن اگر یکی از اینها سلسله روایت را داشته باشد اگر یک نفر در پیش امزین قرآن را بیخانه و اینا تأیید کنه و اجازه بده به همون نفر که انرژی این ازی نحوه خواندن نمی خواندن خود را برای دیگری منتقل کن اونمون نفر از جمعه سلسلی اصناق قرار میگه و ایلا نمیگه اینطور است اینشالله پیدا کنیم ردیس را خب نگاه کنین. اینی اون چیزی بود که قرآن کریم پدویش تا هنوز با ما شما رسید هم از نظر کتابت و هم از نظر قراءت یا صدا باید دنبال این بود که این قرات خیش رو به قراهت قیامبر ملحق کنید و انشاءالله تعالی و اله دوچار تردید و شک همه خب هر حال فکرم امروز همین مقدار کافی باشه آره. تا روز دیگر یا الله تعالی و الله على سيدنا محمد <تصفيق>